افسان به نام خدای یگانی مهربان، سلام افسانه ها همزاد انسانند از که دوران از وقتی که مادر ها و پدر ها و پیرای سال ای در جهان بودند افسانه هم بوده افسانهها ها باستا به ویژگی های زندگی مردمان هر سرزمینند و بخشی از هویت میراث معنوی مردمان سرزمین های گوناگون. در برنامه این هفته هزار افسان، قصد داریم افسان را از برادران گریم که خود از رره گردآورندگان افسانهها و قصه های مردمی سرزمین آلمانند تقدیم شما کنیم به نامه افسانه دختر غاز برگرفته از کتاب افسانههای های به گردآوری برادران گیریم به با ترجمه از محمد شمس روزی، روزگاری، ملکی پیری با تنها دخترش که یادگار همسرش بود زندگی میکرد دختر خیلی زیبا و مهربون بود وقتی دختر بزرگ شد با پسر پادشاهی که در کشور دوردستی زندگی میکرد کرد نامزد شد سرانجام روز رفتن دختر به خونه بخت فرا رسید ملکی پیر تمام چیزهایی رو که برای جهیزیه یه عروس لازم بود برای دخترش فراهم کرد اون حتی ندیمه رو برای خدمت کردن به دخترش و دو اسب چابک برای سفرش آماده کرد اسب شاهزاده خانم فلادا نام داشت و میتونست مثل آدما حرف بزنه همین که زمان حرکت شد پیر دخترش رو با خودش به اتاق خلوتی برد بعد با چاغویی انگشتش رو برید و دستمالی ابریشمین رو زیر انگشتش گرفت تا سه قطر خون روی دستمال چکید ملکه دستمال رو به دخترش داد و گفت دخترم خیلی خوب از این دستمال مراقبت کن خیلی خوب چون در موقع بلا و مصیبت به تو کمک میکنه دخترم بعد هم با چشمانی اشبار از دخترش خداحافظی کرد. شاهزاده خانم دستمال رو توی جیب لباسش گذاشت و سوار اسب شد و به طرف کشور نامزدش به راه افتاد. هنوز نیم ساعتی راه نرفته بودن که شاهزاده خانم احساس تشنگی کرد و به ندیمش گفت آه خیلی تشنمه. از اسب پیاده شو و این پیاله رو از آب پر کن و بیار خیلی تشنمه ندیمه به تندی گفت اگه تشنم شده خودت پیاده شو و کنار چشمه زانو بزن و آب بخور من خیال نگارم کلفتی تو رو بکنم شاهزاده خانم هرچند انتظار چون این برخوردی رو از ندیمش نداشت اما چیزی نگفت پیاده شد و کنار چشمه رفت و بدون اینکه که کنه از پیالی طلاییش استفاده کنه خم شد و از چشم آب خورد. شاهزاده همینطور که مشغول نوشیدن آب از چشمه بود سه خون گفتن وای اگه مادرت میدید به یقین قلبش میشکست شکست. شاهزاده خانم خیلی ناراحت شد اما باز چیزی نگفت و دوباره سوار اسب شد و به راه خودش ادامه داد. شاهزاده خانم رفت و رفت و دوباره احساس تشنگی کرد و این بار هم ندیمش رو صدا زد تا پیاله طلایی رو برداره و یه کمی آب براش بیاره اما این بار هم ندیمه با گستاخی تموم گفت <تصفيق> یه بار گفتم که من خیال کلفتی تو رو ندارم اگه دلت آب میخواد خودت این کار رو انجام بده شاهزاد خانم دوباره از اسب پیاده شد و در حالی که از قصه و ناراحتی اشک میریخت شروع به نوشیدن آب کرد سه دوباره گفتن اگه مادرت از این وصل خبر داشت، حتما قلبش میشکست. موقعی که شاهزاده خانم روی چشم خم شده بود و آب می نوشید دستمالی که سهقدر خون روی اون بود از جیب لباسش افتاد و جریان آب اونو با خودش برد. شاهزاده خانم که خیلی از رفتار ندیمش ناراحت بود، متوجه افتادن دستمالش توی چشمه نشد. اما ندیمه که حواسش به همه چیز بود فوراً طوری که شاهزاده خانم متوجه نشه دستمال رو از جریان آب گرفت. اون میدونست که شاهزاده خانم بدون داشتن اون دستمال ابریشمی هیچ قدرتی نداره و نمیتونه از خودش دفاع کنه. بنابراین وقتی شاهزاده خانم خواست دوباره سوار اسبش فلدا بشه با کمال گستاخی گفت کجا؟ <تصفح> <تصفح> <تصفح> فلادا اسب منه تو باید سوار اون اسب دیگه بشی یالا شاهزاده خانم بناچار قبول کرد و فالادار رو به اون داد بعد ندیمه لباس های شاهزاده رو با لباس خودش عوض کرد و به شاهزاده خانم گفت زودتر قسم بخور که توی قصر پادشاه در مورد اتفاقاتی که افتاده چیزی به زبون نیاری وگر نه همینجا با دستای خودم خفت میکنم شاهزاده خانم خانوم هم از ترس جونش قسم خورد که چیزی نگه اما فلدا اسب وفادارش با دقت تموم وقایع رو می و چیزی نمی گفت اونا دوباره به راهشون ادامه داد شاهزاده خانم و ندیمش رفتن و رفتن تا به قصر پادشاه یعنی نامزد شاهزاده خانم رسیدن وارد قصر که شدن شور و هل هلی زیادی برپا شد و پادشاه جوان به پیشوازشون اومد پادشاه جوان به ندیمه که خودشو شاهزاده جا زده بود کمک کرد که از اسب پیاده بشه بعد از پله های بالا رفتن و شاهزاده خانم رو پایین پله ها تنها گذاشتن درست در همین موقع پادشاه پیر یعنی پدر پادشاه جوان بر حسب تصادف از پنجره اتاقش نگاهی به بیرون انداخت و چشمش به شاهزاده خانم که در حیات قصر تنها ایستاده بود خیره شد پادشاه پیر وقتی دید که دختر چقدر زیبا و معصومه به تالار قصر رفت و از عروسش که همون ندیمه بود پرسید دختر جان این دختر چیه؟ ندیمه با تکبر و غرور خاصی جواب داد اون ندیمه منه من اونو برای اینکه تنها نباشم همراه خودم آوردم بهتره به اون کاری بدیم تا چاغ و تنبل نشه پادشاه پیر لبخندی زده گفت <تص> فکر خوبیه اون رو میفرستم که به کنراد جوون در چروندن غازها کمک کنه ندیمه گفت البته البته این کار هم از سر اون زیادیه چند روزی از این ماجرا گذشت تا اینکه ندیمه به همسر شنی پادشاه جوون گفت عزیزان میشه خواهش کوچیکی از تو بکنم به شاهزاده گفت البته با کمال میل ندیمه گفت دستور به قصاب قصر سر اسبم فلاده رو ببره چون توی راه خیلی منو عذیت کرد. اون اسب خیلی چموشیه و اصلا رام شدنی نیست. پادشاه جوان گفت ولی ولی عزیزم اینطور به نظر نمیرسه. ندیمه که میترسید، اسب به همه بگه که اون چیکار کرده باز هم برای کشتن اسب اصرار کرد و پادشاه جوون هم بالاخره پذیرفت و دستور داد که هر چه زودتر سر فلادا اسب با وفای شاهزاده خانم رو ببرند دستور و کشن خالده به گوش شاهزاد خانم رسید خیلی ناراحت و غمگین شد فورا مخفیانه به سراغ قصاب قصر رفت و اون گفت جناب قصاب از شما خواهشی دارم قصاب گفت چه خواهشی دختر جوون شاهزاد خانم گفت این عصب از وقتی به دنیا اومده در کنار من بوده من علاقه زیادی اون دارم اون اسب با وفا و خوبیه شما شما نباید سر اونو ببرین قصاب خندهی کرد و گفت <تصفيق> معلوم دل این اسبی دختر جوان ولی من نمیتونم از دستور پادشاه جوان سرپیچی کنم من باید هرچی زودتر سر این عصبو ببارم و خبرش رو به پادشاه جوان بدم متاسفم دخترم واقعا متاسف شاهزاده شروع کرد به گریه کردن و اشک ریختن. قصاب دلش برای شاهزاده خانم سوخت. ولی از طرفی هم نمیتونست از دستور پادشاه جوان سرپیچی کنه. شاهزاده خانم فکری کرده گفت جناب قصاب شما شما اگه سر فلادار و بالای دروازه بزرگ و دور ای که هر روز از زیر اون رد میشم آویزون کنی من من یه سکه طلا تلا به میدم اینجوری من هر روز حداقل سر عصبی رو که سالهاست در کنارش بودم حتما اونو میبینم و کمتر قصه میخورم قصاب فکری کرد و بعد یه سکه طلا از شاهزاد خانم گرفت و قول داد که این کار رو انجام روز بعد صبح زود وقتی که شاهزاد خانم و کنراد غاز شروع داشتن غازها رو از دروازه بیرون می بردن شاهزاد خانم به سر اسبش فالدا نگاهی انداخت و گفت آه فالدای عصیزم این چه سرنوشتی بود و بعد عشق رو پر کرد سر اسب پاسخ داد آه ای شاهزاد خانم من این چه سرنوشتی است اگه مادرت از این سر بهش خبر داشت قلب نازنینش حتما می شکست شاه خانم و کنراد همراه غازها از شهر خارج شدند و به طرف دهش رفتند وقتی به اونجا رسیدن شاه ساده خانم روی چمنها نشست و خاص کمی با کنراد شوخی کنه بنابراین شروع کرد بخوندن آی باد خوشخبر بیا و کلاه کنراد رو با خودت ببر بغلتان آن را تا آن سوی ها تا من کمی بخندم و بلافاصله باد تندی وزید و کلاه کنراد رو از سرش برداشت و با خودش به اون دور دور برد کنراد به دنبال کلاهش به این طرف و اون طرف دوید و بالاخره کلاهش رو به چنگ آورد ولی از دست شاهزاده خانم خیلی عصبانی شده بود تا شب حتی یک کلمه با حرف نزد اونا تمام روز رو در سکوت به چروندن غازها گذرندند و شب که شد به خونه برگشتند صبح روز بعد موقعی که شاهزاده خانم و کنراد دوباره داشن از زیر دروازه بزرگ عبور میکردند شاهزاده خانم با چشمای اشکبار گفت فالادای عزیزم این چه سر نوشتی؟ و سر فالادا پاسخ داد آه ای شاهزاده خانم من این چه سر است اگه مادرت از این سر خبر داشت قلب نازنینش حتما می شکست وقتی شاهزاده خانم و کنراد به مرزار رسیدن شاهزاده خانم دوباره هوس کرد یک کمی با کنراد شروعی کنه و اینبار هم شروع کرد بخوندن بیا بیا ای باد خوشخبر کلاه کنراد را با خودت ببر به آن را تا آن سوی دشتا تا من کمی بخندم و دوباره بادی وزید و کلاه کنراد رو با خودش به اون دور دورا برد وقتی کنراد موفق شد کلاهش رو به دست بیاره با عصبانیت گفت من از دست تو به پادشاه شکایت میکنم و شاهزاد خانم خندید و گفت این فقط شوخیه همین بعد اونها غازها رو چروندن و به شهر برگشتن اما این بار کنراد نزد پادشاه پیر رفت و گفت گربان، گربان، من دیگه حاضر نیستم با این خدمتکار جدید به غاسرونی برم پادشاه پیر با تعجب پرسید چرا؟ اتفاقی افتاده؟ گنرات گفت اون تمام روز منو سرگردون دش و صحراها میکنه و بعد تمام ماجره رو برای پادشاه پیر تعریف کرد ولی پادشاه دستور داد که فردا موقع غاسرونی کنراد شاهزاده خانوم رو هم به همراه خودش ببره و کنراد بر خلاف میلش دستور پادشاه پیر رو اطاعت کرد و صبح زود به همراه شاهزاده خانوم برای چنندن غازها به مر زار رفتند و ما بشنوید از پادشاه پیر بله پادشاه پیر که از کار یا همون شوخی شاهزاده خانم تعجب کرده بود صبح که شد پشت دروازه بزرگ پنهون شد و شنید که شاهزاده خانم با سر اسبش فالدا حرف میزنه بعد اونا رو مخفیانه دنبال کرد و نزدیک مرزار پشت بوتهای بزرگی پنهان شد وقتی شاهزاده خانم به مرزا رسید روی چمن نشست و باز هم شروع کرد بخوندن بیا بیا ای باد خوشخبر کلاه کنراد را با خودت ببر بغل آن را تا سوی دشت ها تا من کمی بخندم و باز یه دفعه باد شروع کرد به وزیدن و کلاه کنراد را با خودش برد و کنراد باز هم مجبور شد مدت دنبال کلاهش بدوه پادشاه پیر تمامی این رو با چشمه خودش دید و بعد فورم به قصد برگشت و شب که شاهزاد خانم از غاز شرونی به قصد برگشته بود پادشاه پیر اون رو نزد خودش خواست و پرسید دختر جان ماجرا چیه؟ تو رازی در دل داری؟ شاهزاد خانم گفت قربان من من جرت ندارم این راز رو به شما یا کس دیگه ای بگم چون قسم خوردم که قفل دهنم رو باز نکنم اگه زیر قولم بزنم جونم از دست میدم پادشاه پیر هرچه اصرار کرد فایده ای و شاهزاده خانم حاضر نشد حرف بزنه و بالاخره پادشاه گفت دختر جون حالا که به من نمیگی لاقل غمهات رو به این اجاق روشن بگو پادشاه اینو گفت از اتاق بیرون رفت به محض اینکه پادشاه رفت شاهزاده خانم شروع کرد به گفتن ماجرای زندگیشو اشک ریخت و حسابی گریه کرد شاهزاده خانم برای اجاق تعریف کرد که چطور ندیمش با تهدید اونو مجبور کرده لباساش رو به اون بده و خودش رو به جای اون جا زده و همسر پادشاه جوون شده پادشاه که کنار دهانه دودکش ایستاده بود و به حرفای اون بوش میکرد وقتی شاهزاده خانم ساکت شد وارد اتاق شد و گفت آه دخترم من همه ی ماجراک زندگیت رو شنیدم تو یک شاهزاد خانم جوان و زیبا هستی نگران نباش بقیه ی ماجرا رو بسپار به من و بعد پادشاه پیر رفت سراغ پسرش یعنی همون پادشاه جوان پادشاه پیر هرچیزو که از زبان شاهزاده خانم شنیده بود برای پسرش تعریف کرد و به اون گفت که شاهزاده خانم واقعی همون دختر غازچرونه و گفت که ندیمه ی بدجنس که حالا همسرونه باید به سزای اعمالش برسه. پادشاه جوون هم دستور داد جشن باشکوهی برگزار کنند و دختر غازچرون رو هم به این جشن دعوت کرد دختر غازچرون یا همون شاهزاده خانم با لباسهای زربفت زیبا به جشن وارد شد اون اونقدر زیبا شده بود که ندیمه ی بدجنس هم اونو نشناخت بعد از شام پادشاه پیر معمایی برای حاضران در جشت تر کرد و از همه خواست اونو حل کنن بعد تمام حوادثی رو که برای عروس حدیقیش یعنی شاهزاده خانم اتفاق افتاده بود تعریف کرد و گفت سزای کسی که به این صورت به ولی نعمت خودش خیانت کرده و اونو فرید داده چی میتونه باشه؟ حاضران در مجلس سکوت کردن و به فکر فرو رفتن در این موقع ندیمه که میخواست خودشیرینی کنه گفت به نظر من باید اون رو توی بشکهی بذارن و از همه طرف سطحا میخ تیز به بدنه این بشکه بکوبن بعد بشکه رو با تناب بلندی به دم یه اسب ببندن و اصف اونقدر تو کوچه های شهر بگردونن که اون موجود بدجنس و خائن به سزای اعمالش برسه در این موقع پادشاق پیر فریاد زد تو همون زن بدجنس و خائنی و سزای تو همون چیزیه که خودت گفتی و بعد دستور داد که برافاسد حبت رو در مورد ندیمه اجرا کنن ندیمه به سزای اعمالش رسید و پادشاه جوان هم با شاهزاده خانم ازدواج کرد. اونها در کنار هم سالیان سال با خوبی و خوشی زندگی کردند. افثانه دختر غاز شرون رو براتون تعریف کردم از کتاب افسانه‌های های اثر برادران گریم با ترجمه از محمد شمس امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح بور ویراستار فریبرز نوربخش، مهران دوستی صداوردار محفام پرتو تالیف کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر بدرود